ببخشید آقا میدان آزادی کجاست ؟ میدان آزادی با اتوبوس می روید یا با تاکسی؟ فرقی نمی کند؟ فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است. ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است؟ ایستگاه کجاست؟ کمی جلوتر؟ نزدیک بانک؟ ببخشید بلیط فروشی کجاست؟ فروشی هم کنار ایستگاه هست متشکرم. ببخشید آقا میدان آزادی نزدیک است بله، شما میدان آزادی پیاده می شوید؟ بله من میدان آزادی پیاده می شدم. شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید. بعد از دو ایستگاه بله. من به شما میگویم میدان آزادی کجاست متفکرم خواهش میکنم